کلیلی سیم، لیهاتویی بخچهی دانایی. گرام بدوی زنینده یچی کلپ لانکانی گیشتن با کامرانی و خوشگزرانی. جیم رون. زر چین بزوینری کشتیگ لکر کود. کابت نکه همو هولی کلتوانای دابو خستی کار بو چا کرنوی. لوانش بکر هینانی توانای باشتریین پس فارکانی بواری کشتی بالام سرانجام هاولا کان به هدرځو. روج کلیکاتی گفتګوي کې اتنه کالګلېچګلې یاریده‌درکان له باری همان گرفتوا. کسګلې نزیک بو پیګوت بوبوره بهزار دکان. او ما وې د روج کله بینم تشټه کتان لکار کوتو. هر بو زانې مش پر څارم کړت. پیام غوتم بزوې نه راکې له کار کوتو پیښتي پر څار کړنه و هي. اته استه پیښست د کسې کې چا چب کاتو. بوید دلیکات نه کګوتېباله بالامبوده پرسی پیاوکه اولامیدایه وا من دتوانم چې شيکه مو کات نه کا امقسای بلا وا سیرو چون که انکسه هیڅ نشانه چی اوې نه بو بلګبد لسرف سپور ریتی لکاروبری کښیده کفت نه کا لګل او کسه داسیو بولای شوېنی بزوینه رکه بځه هیڅ تو له دور او چاودې لري دکړ پیاوکه چپسې چی بسکولې درینهو د سپیخربا پیچې شانې لڅن چی زیاد تنها جیره دنګ کاندګر دستی هنه با بزوین رکه دو لبشت زیاوازکانی بزوین رکه دروانی لکو تایی دبا چپشکی با بشت چی بزوین رکه دا چشو بزمار چی پیده دا کتی زور جگه سرسامی کپ نکه بو که با جاری چی دی که بزوین رکه دستی کرد و با ایش زور دلخوش بو پر سیاری لپیاوکه کرد چون توانی دم کارب که بزر دخنه که غلامی دا ایوا لی حال و پاشان کاغذشیده دست کپنگا که تنها جمع ماری یک چیز سر نصف هزار دلار. کپنگا تماسهای کاغذکی کرد و پیگوت، هزار دلار بر انبار به ایشی تنها داخله، تکه امن تبعینه. پیاواکا گویی، باور پر خوشحالی چی کاغذشیدی که داره، نسرین نصف بود یک دلار، بر انبار به پیاچیشانی چاکوشیک با, با بزنن رکد و نه تنها دلارش، بر انبار به من او جگاهی به زوینه را کم به دیاری کراوی زانی که پیویز بو چکوشی پیدا بکشه. شه لیره ده بینین لیزانین و لیهاتوی ام پیاوا سودی هزار دلاری لماوی تنها دخولک دا پیگه هند هنده هیچ پیوان دیگلنی و سرکوتن و زانین یا خود لیهاتوی دانیه بلکو مسلکه تنها شانس و بخته پنده که بختم بدره و بم خرنه و دریاو با او اگر بخد دیاورم ورم بیت هر دتوانم وانه مرګه یک بورزگار ژیانم دوزمو بلالم رم بدا پید بلالم اگر براستی فربد د مناو دریای کهو ملج نه زانی دلنیابه د بیت به جمعی چې به تامی مس یکه چیروش کرمن د چینوی هيا لسرتي د مزرندنی دی لبردم او مچنیه د واستابو ک کاغذ پر دکات شرزاین ابو به توایی پر شوکاب یی چگلسیگت یراکان برای د تیپر پرسیاری ریکټ یارمتی دیوت او ګوتی بلې اما چې چون څون کار دکې سگت یراکه پیګو زور حسانه او راپورته ګرینګی بدست دس کارمندوی یکه ووبو لې ورګرتو خستینا او ماشینه کوو پرکانې راپورته کوي پړپړ کې ته او کاته کارمندوی یکه وخت ماشاین نه نه چې ګوربکات سر سړمانې ګل رخصاری زور سپاسی کم بلام ده توانید پیم بلیده چیو کپی کپیه چی ام راپورت درده وانه به بیجی جیهانی و نوسری امریچی جیم گو تویتی ده کرید بون یا نبونی زانین و زانیاری چه دیاری بکن فرانسیس بیکن گو تویتی زانین خویل خویده هزه چی گوره چند زانین و زانیاری زیاد بید هندشت نو خلچی ده دیار دویو لگرفتکن یا دعوی راکاند دکن و چاوره اموشگاری لیدکن رالف والد و امرسون گتویتی اگر کسی کتوانی کتبه باشتر لوی تا اوکات نسرا و بنوسه یا بشوازی چی باشتر اموشگاری خلق بکات یا خود تنانه تلایی مشک باشتر لوی دراو سکه اندرس بکر پشم مالکه لجگه چی دوری و شکده درس بکر خلق بورگرتنی زانیاری و رنمایی هر دسم بوله زانی نو معرفه هزا. دویت دا هینه رو درفتی زیادتری شد با کامرانی و سرکوتن دا خوکینه بزانین پلی زیره چید برزده بیتو بیرت با بو آسو و باری نویه دکریتو زانین دو جوره زانینی شتیک یان زنینی سرچاو با زانیاری لباره او من وقت خوم باورم باوهه دا گونجه له هر کسی گیان شتیک و فیر ببی جا هر شنگ دا بید لب خانه فیر بوم و هم زانی ایتر اونده په هر ماشه و هم ایتر یې تیر هموشه تاوه زانیم دوای ځانیم فربوم پر د هرې کبدریژای هر بر دوامه تاله ژوند دابیت او کردار نه همون همو ورځې چې درفتي نوې هے زانینی ځانې رو جیانی ورته منو خو هم هر درفتي چې فربوني بابت نویم برج کوي okay. لدستی دستیناته لا سګبټ کوله کم سالی او فربوم ب به مرض خوشويستي و فیر چون یاریب کمو ببردوامیش اوی زور بخومو. لدوبشی لیکسکان مو برینس و بیانکا و فیر چون سر بخوبم. اوش فیر که بو یاریب شودن دابنیم. لکیلو قناعت کردن فیر زانست خوازیش هر لو پینز آجالا بچوکو و فیر بوم که نرمینی کچن بخیویاندکا. لسرش تیشو و فیر بوم بونی دو خیگ استم همیشه شیوالگل خور حالاتن لمرولوه که هر جیز لکر کردن ناوستد فری که کشان و آرامگری و را برزی بوم بردوام یاد نامه چی بچو پین و سکال تا هر بیره چی نویتی دا تومارو کم که بخیالم دادید سودم پیدا گهنید جا له هر جگاه چی ام جیهانه دابم آیا دا زانی استاولم سردمه دا لهمو کاتک زیاتر ریگو حوکاری زور لبرداز دسینانو بو با دا سینان و دسخستنی زانی, نو زانی خویندن بنامه نیری، خوندنی فرمی کدکره لره و تفل دکتوره با دزبینی، با کورتی رگاکانی با دستینانی زانین زور و جاوازن. با ام پرسیارت لیب کم، تو اتومبیلته؟ ته یه؟ اگر ولامکه بباله یه، ای جوه با رادیو اتمبیل کدگری، هنده گورانی سوزداری ببیستی کسی کد بیر بخاطه و کل رابردو در دلی آزار دابید، با شیوه یک هر زرگ گویستی انگوران بمشته دگی تشوی نکاره تو شی حالتی چی پستی و خموچی ده که کسی چی شد پیده گد و سلاوی لدکات و حیوه روشی چی خوشت بوده خوازه لو پر ریحالتی تو رایی ده اولامی ده دیده و تکایا لم حالم ده وازم ده بینه آخر کامره رو دلخوشی لچوه و ده اعمال ساله گده تیگ را حفصد کازمیر لوتون بیال ده بسر ده بین بزن جگلگل حاتو چو جویگرتن جو ل لذی اتی سود و تیجوارگستن لوقاتا خومنتوشی لیش‌ها و گلگوشاری درشیله که کبدال نیایی و دودلی و رارایی من زیاد دکن. لوقاتی گداتوانی، اوکاتی لئوتنبیل دا بسرید بی. بشه ویشی برهمین بکاری بهنی. بری حفظت کار جمله صارق دب بسبو آوی. جوی بگری تو فری پروش بون بید بکارکن. فر بی چون بر سترین وزد اذبخی. چون بری فروشکان زیاد دکیو تو آنکان در لهنری پیوندی کردنو عالوگوری زانیاری خان زور باز دکی. بړګاو شو وازیشی بشتر کارو بارکانت انجام بده یان چوند بیت باو چک یان دای کې چې بشتر بمند علاقه نه امانش بری حفصت کا جمیر او کاته پیوښتې ککسه د یوه وبد سینانی برغوانامه اګلګوري بريوبردند ده بو پیه اگر ماوی د سال اوتمبل د لخرې د کرېت هر بخورای پلی ډاکټورا به تذبیهی منهمی شل او تمبل کم ده زیاتل سی برنامه سر دنجی هلدګرم بو هر ځایګه یو بچم او برنامه نامه به کار دینم بو خوره شنبی خرنو زیاتر تر میزانی روزن یریکان با پرسیارې چې دکدې پم حظ د خو نوه هيا کاتک ام پرسیارې لا آمد غواني وانه کم دکم زور به اندلن باله لدوی اولیاند پرسن څنګه ستان کتابه کې د کرم بلان هرجیز نه خویم نوا علماء کني او در ده ام حالتا لسداد چلی آمد غوان رد دت تنهاله بر او کاتی تواوی نه بو خوین نوې انجام لیکورینوی کل امریکا انجم در درې خستو الله او کان د تمن هر زکاری دا هفتانه نزیکی 39 کاجمیر لپاره د تلویزیون دا بسره ده, ده به ګورکانش دوروبل 30 کاجمیر له هفته یکه تصور کا امه معنی وهایا زورینې خلق ایشی سرقلقاری ان تماشاکرنی برنامه کانی تلویزیونه لګل اوج دا زوره له خلق کن سرکوتونینو چاتیم بوخین نوانی اگر تو ام کاته د بو فیر بو نو چاک ترکنی له دکریه دولامندو کامران بی تو هر کاری که خوان کارکه برامبر به کاتکت پارد نداتی بلکو برامبر به نرخی کاتکت پارد بداتی هر لبر اوای داحتو دستکوتی هندی که زورو دگاتا شش جمعره هندی چش کم ترین بر دستکوتو درامتی انده بی لوانه یکم دا لعوتاوای کنه دا یه چگل خانم آمده بکان گوتی من کارکمم لدست داوا که کار کردم بول چش خانه چی گورده کار کړدن له چیشخانکان د کاري چيزور ګرامم له روان دانين بومن ګنجاوي ليم پرسي له چوي او فیرويته وګو کار کړدن له چیشخانکان د ګنجاونيد وتي فیر نه بوم او په ويشتي به فیربون نیو هیڅ نه نيشي ته دانيه ليم پرسي هیڅ کې ته به کله بوري چیشخانکان د خوندو ته وتي نه خه پرشم پر سیم له وانه تايبه د قس کړدن له باري چیشخانکان او آماده وي وتي نه خه له ردا ايدي چون نه يزاني او سر کار کي درکراو ده توانی به فروان کدنی باز نیز زانی نوزانیاری کند دست کوت و درامت زیاد کی؟ اما جلرین نرخی آو خزمتانی ده توانی پیش کشیم کی؟ من همیشه آسی هم هربوی یانزه برسکر نوی برسکر نوی و خم همیشه کارو بررسی نوی اصلی هاتوی فیربونیم دکم. هربای یعن زب پیش خص نو بررسی نویم بده سیناوو بومات برای وبری گشتیو ده هاتو دست کوتیشم لمعوی کمتر له هش سال دا حد آمده زیاد کرد. زورکل خالق پاره چی بیشمار بخورد نخورد ناو دیگر او اتومبیالو جلوبرگ دادن. که چی با پیش فراوان کرنی اقلو بیرو هشان. هیچ با گهشتن بسرینی چی باشتر هر لأم رو و کاسیتی برنامه بسودکان بکرو بردوام لأوتون بیلا که دا, دا دای بینی با اوی زارترین کل لگو حفصت کاج میره ورگری که سالانه لدست ددچه رو جانه بلائینی که موا موای بیس خولک بیخوین رو پنده چی چینی های داله خوین نوا با اقل و خوین نوه مروهه چی کامل درست دکن برای بر من او کسی نخوینه توا لعاسته چی برستر دانیه لو کسی نازانه بخوینه توا همو زانیاری چی پیواز به ایشکتا و فیر ببا تا لها کاریک دکده که کسی چی دیارو نعابی بو امکارش آماده بوند لوانه و تارو تا برنامه فیر کاریکانو جوه گرتن لکاسی تا دنجه فیر کاریکانو خوین نوه با همو جورکانیوا لسرت لدویده خود ببینې کې او بردوام خوانی بیرین وېدبی زانی اری زورت رو بشمر بد از دین من چې نوې فربه من وکړم فربم بسز من بدوی مو بخوین مو بنوسم هفته نه پنس کتاب بخوین مو جوړه ده کنسټی دنجې ده کړم همو امان نش پیوندارم دکنه بو کس مزنانو که ژیانین له دانانې کثیر فیلسوفی بردو یابانی فوشی جوکینډو کیندو تویتی دانشته لبردم روناچی مو مګدو لبردم ته وی کی کراوه به لګښت وګورین لګل کسانیک هاڅر ختنی تامو چیشی چی بیوینه علم دنیا یاته دا استا و تاته فرغونی پن سال همان کسب دبی تا کشته کبرت او کتابانه کډیان خوینی ته او کسانش کچا یان او کانته کله تمنه کندکاته استارت تاته کی پښوژدکم به هو یو دتواني بګیته برسلیم استی زانین ولې یکم لکرین و جوه گرتن لبرنامکانی کاسی تی سود ور بر گره بردوام جوهان لیه بگره دوان کتی بی او دانه سره بکره که برای بر تو دانه رو نو سره چی گوره لبوارکانی کارکان و پال نرکان و زده بی خوینه رو بلاینی کمو روزانه ماوی بیس خلک بخوینه رو دکرد لجمه خوارد نکن واز بینی بلام هر جیز اوکات دیاری کره و پر جوه مخه که روزان سالانه بله اینی که ما آمده دوانه دو محاضره ببه چوار زمانه چینوی فیر ببه هر روشه گوشه چینوی لفرهنگ ده فیر ببه لماوی ساله ده استی زانین و زانیاریت براده چی سرنزغا چش برزده بیتو پینز آمان جه کد لبردم ده دا دبنه لو کاره ده دیار و نعابی کده که لهمو کاره چی گنجاو ده آمده باشی تبه کسانی سرکوتو روشانه ده تا توش با بیویستی خود رو هشت کجمیر لپینا و مانووده کرده که بزانه هر کجمیری چی زیاده کردنه بل همه چی زیاده ده بوده هاتود شش بردو نیو کجمیر زوتر لخو بیدار بره و او که تا بکر بینه بوده هنانی بیری ویو و ناوی بنه که تی بیر کردنه و که هر بیری چی نوی بکلک بزه این دهات دست بجه تو ماری بکر سر جم ام بیرانش جم بکر و کلا بده سینانی آمان دکاند نزی کت دخانه و فکتور هاگو گو تویتی ده گونزید برگری هیرشی سباکان بکرید بلام هر جیز برگری او بیره نکری که کاتی درکوتنی هاتوا حفتم بر همیشه یاد نامهی که بچکولاو پینو سیگلتنیش دیگای نستن توابید حال بیریه که نویه به خیالت دهات تو ماری بکا چون که اواند دیارین لا نا آگاهی توا پیوسته لام رو دا چی بکم تا استی زیانم باشتر بیت. نو لپیش نستنده ام کارانی خواه رو انجام ده. لخود بپرسه آیا زیرکانه کانه امرو د بکر نه؟ اگر بکرد جاری چی دی کلم بجی توا چی کاری که دیاواز لوی تیده کردو تنده که؟ داوه لنا آگاهید بکر بدوائی ریگه گلی چی نوی دا بگرد بو باشتر کردنی لیهاتو یکاند. امر ده دگیانه تا برسترین استکانی زنین او کارانب که کپیشتا بکرین دبینید بپلیکانه سرکوتن دا سردکویتو لکاماله باشترین صدا سی سرکوتوانی جهان دبید بردوام ام حولانب دبو گیشتن با سرکوتن لپاشان دگیت باشترین دوخه که دکریت تیده بید همین شش یادت بید همو ساتگ و هابجی کتا ساتا وقتی جیانتا ببا و رابجی با امید و Ба хошэві сті обжі. Ба ті кошану обжіў. Резу ба хай